سلام دوستان گرامی بنده در این برنامهها در نظر دارم داستان رستم و اسفندیار رو برای دوستان بگم منتها به نظرم آمد که قبل از او یک سلسله مطالب کلی در باب شاهنامه و در باب فردوسی عرض بکنم اونچه بنده مورد نظرم بود که اینجا به عرض دوستان برسونم اولش این که خب این روایت های ملی آیا پیش از فردوسی کسانی بودند کاری روی اینها کردند نکردند محاخذ فردوسی چه بوده چون خودش میگوید که این مطالب از پیش سابقه داشته است و حتی اگر تصریح هم نمی کرد ما میدونستیم برای اینکه در کتاب های بسیار کوهن ایرانی مثل عوستا و تفسیرهای او به زبان پهلوی اسم اده زیادی از این قهرمانان یاد شده و هم در کتابهای تاریخ کتابهای ادب بنابراین می دونستیم این مطلب رو حتی پیش از خوندن شاهنامه این روایت ها به پهلوی تدبین شده بود به نام خدای نامک یا خدای نامه خدا چنان که می دونید به خصوص به صورت خداوند به معنی پادشاه هم هست و حتی خداوند خانه مثلا یعنی صاحب خانه یا ده خدا یعنی مالک ده بنابراین خدا به معنی پروردگار هست به معنی مالک و صاحب و پادشاه اینام هست و در پهلوی خدای نامک همون معنی رو داشته که شاهنام منتها وقتی که خواستن به عربی این رو ترجمه کنن خدا ترجمه شد به الله و الله اون معنی بشری خدا رو در بر نداشت به همین دلیل به جای خدای نامک این عنوان رو ترجمه کردن سیر الملوک یعنی سیرت پادشاهان یا سرگذشت پادشاهان. همین گرفتناری هم در زبان فارسی بود چون کلمه خدا رو به جای ایزد و پروردگار پذیرفته بودند و بیشتر به کار میرفت این بود که عنوان کتاب رو شاهنامه ترجمه کردند نه خدای نامه کسی که خدای نامک رو از پهلوی و عربی ترجمه کرد مترجم بسیار معروف و درجه اول و نابغه زبان فارسی عبدالله بن مقفع هست که از انشاء او الان فقط کلیله و دمنه رو به عربی در دست داریم و مقداری گفتارهای پراکنده در کتابهای ادب عربی کلیله در زبان عربی از نظر نصر همون مقامی رو داره که گلستان شیخ اجل سعدی در فارسی یعنی مقام اول رو داره البته به استثنای قرآن کریم که ما مسلمانان معتقدیم که کلام خداست بنابراین کلام خدا رو باید روش کنار اون با چیزی قابل مقایسه و طرف نسبت نیست قرآن به کنار از هر عرب درس خونده‌ای بپرسید اولین کتاب نصر عربی چیست میگوید که اولین کتاب کلیل و دمنه است که به انشاء عبدالله ابن مقفه عبدالله ابن مقفع عربی اولا زبان مادریش نبود ثانیا در سی و دو سی سالگی کشته شد و تمام این فضل و کمال رو او در این سنین جوانی آموخته بود و یکی از اتهامات او در اینکه به قسل رسید همین بود که گفتن نعوذ بالله کلیل و دمنه رو برای معارضه با قرآن و برای آوردن نظیری برای قرآن صحت است ولی البته علت اصلی کینه شخصی خلفای عباسی بود نسبت به این جوان ایرانی. به هر حال ابن مقفعس دیگر البلوک رو ترجمه کرد. کتاب مدت‌ها در دست بود. مقداری از مطالب او در کتاب‌های ادب عربی بر جای مونده ولی خود اصل عربی کتاب از بین رفته خب آیا معخذ فردوسی در سرودن شاهنامه همون کتاب ابن مقفع بود؟ به درستی نمیدونیم ممکن است که کتاب ابن مغفه هم جزء مدارکش بوده باشه اما در فارسی تشریفات گردآمدن شاهنامه خوشبختانه در یه مدرکی به جا مونده که اون مدرک قدیمترین نمونه نصر ادبی فارسی است و در سال 346 هجری قمری نوشته شده این مدرک موسوم است در میون اهل ادب به مقدمه شاهنامه ابومنصوری علتش این است که مردی ایرانی به نام ابو منصور پسر عبدالرزاق سه‌پاه سالا خراسان بود در دوره سامانیان که اونها هم ایرانی بودند و از ایرانی بودن خودشون بسیار مفتخر بودند این ابو منصور عبدالرزاق وقتی شنید رودکی کلیل دمنه رو به عمر نصر احمد سامانی به نظم آورده و در نتیجه این نظم شدن کلیل نام نصر احمد جاویدان شده او هم خواست کاری بکنه که اسمش باقی بمانه و می بینیم که باقی هم مانده. به فکر رفتاد که روایت های ملی رو جمع آوری کنه چون این روایت ها همه نزد اشخاص بود نزد موبدان، نزد دهقانان، که طبقه تحصیل کرده و درس و با فرهنگ کشور بودند و خود فردوسی هم از طبقه دهقان بوده است از گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان مقصودش است. مقصود این طبقه درس است که پاسدار فرهنگ ایرانی بودند حال ادهی از دهخانان و موبدان این روایت رو در شهرهای مختلف ایران از حفظ داشتن و روایت می به دستور ابو منصور پسر عبدالرزاق تمام کسانی که روایت های ملی رو از بر داشتند و میدونستند و روایت میکردند از شهرهای گوناگون جمع کردند. و اینها رو یک جا گرد آوردند و اینها روایت خودشون رو گفتند و منشیان اینها را نوشتند و جمع کردند و تدوین کردند به خط خوش نوشتند تصویرها هم بر او افزودند و کتابی پدید آوردند به نام شاهنامه اسمش را هم گذاشتن شاهنامه البته به نصر و این شاهنامه در سال 346 هجری قمری تدوین شد و به پایان آمد و بعد هم مقدمه‌ای بر او نوشتند در همون سال 346 که این مطالبی که بنده الان خدمت شما عرض کردم تمام گرفته شده از اون مقدمه است. حتی در اون مقدمه اسم تمام این راویان های ملی رو و اینکه هر کدام از کدام شهر بودن میگه. خب این شاهنامه افونسوری چه شد؟ طبیعی است که وقتی شاعری اون هم مثل فردوسی این روایت‌ها رو به ناز اونم نظمی چنین فاخر بیاره دیگه کتاب نصر رفته رفته فراموش میشه و از خاطرها میره همینطور هم شد شاهنامه نصر شاهنامه عبو منصوری کم کم فراموش شد و از میون رفت فقط مقدمه ای که بر او نوشته بودن بر بعضی نسخه های خطی شاهنامه فردوسی الهاق شد و درنچه خوشبختانه ما اون مقدمه رو داریم که در اون گرد گردآمدن شاهنامه و تدوین شاهنامه یاد شده. بنابراین یکی از مداره که بسیار مهم فردوسی این شاهنامه ابو منصوری بوده است و خودش اینجا اشاره میکنه بدون اینکه اسم ببره ابو منصور رو. میفرماید که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره ای برده هر بخردی، یکی پهلوان بود دهخان نجاد، مقصودش همون ابو انصور عبدالرساق، یکی پهلوان بود دهقان نجاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پجوهنده روزگار نخست، سخن ها همه باز بازجوست، هر کشوری موبدی سال خرد بیاورد و این نامه را گرد کرد بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرحگوان گوان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند بگفتند پیشش یک و یک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید زیشان سپه بد سخون یکی نامور نام افکند بون چنان یادگاری شد در جهان برو آفرین از کهان و مهان این اشاره به گرداوری شاهنامه ابومنصوری منصوریست به دست ابومنصور منصور عبدالرزاق اما این تنها شاهنامه موجود نبوده در معاخذ قدیمی مثل مجمل و تواریخ و و تاریخ سیستان کتاب دیگری به نام شاهنامه بازیاد شده یکی از اونها شاهنامه ابو علی بلخی است یکی دیگر شاهنامه ابو المعید بلخی از اینها عبارت در تاریخ سیستان نقل شده البته متاسفانه خود کتاب ها به سرنوشت شاهنامه ابو دچار شد. علاوه بر این از قدیمترین ادوار شاهنامه به نظم هم آمده است و حداقل ما دو تن رو میشناسیم که پیش از فردوسی دست به کار نظم شاهنامه بردن یکی از اونها مردیست به نام مسعود مروزی یا مسعودی مروزی که مقدسی صاحب کتاب البدع و تاریخ که تحت عنوان آفرینش و تاریخ به فارسی هم ترجمه شده در کتاب خودش مینویسد که پارسیان کتابی دارند به نام شاهنامه این کتاب نزد اونها بسیار عزیزه. او رو رو می میکنند به طلا و گوهر آرایشش میدن و سرگذشت پادشاهان و تصویر اونها در این کتاب هست و این کتاب خیلی گرامی است نزد ایرانیان کاری که مقدسی کرده این است که دو بیت از اول و یک بیت از آخر این شاهنامه رو یاد کرده و اونچه ما از شاهنامه مسعودی مروزی امروز در دست داریم همین سبیته که البته اون هم با تحریف و تصحیف بسیار هست اما از او برمیاد که وزن اون شاهنامه وزن شاهنامه فردوسی نیست و در بحر دیگری است در بحری که بعدها داستان ویس و داستان خسرو شیرین هم در اون بحر ساخته شد که به نام بحر هزج مصدس مقصور معروفه نزد اهل عدم بار دیگر یک شاعر استاد ابو منصور دقیقی شروع کرد به نظم شاهنام فردوسی باز در مقدمه شاهنامه خودش از دقیقی هم یاد میکنه بی اینکه که اسمشو ببره میفرماید تو از دفتر این داستانها بسی همی خاند خاننده بر هر کسی جوانی بیامد آمد گشاد زبان سخنگو یا خوشتب و روشن روان به نزم رمین این نام را گفت من از او شادمان شد دل انجمن جوانیش را خوی بد یار بود بد همیشه به پیکار بود بر او تاختن کرد ناگاه مرگ به سر برنهادش یکی تیر ترگ بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد و بعد جای دیگر به تصریح هم از او سخن میگوید که دقیقی داستان گشتاسب و ظهور زردشت و جنگ های گشتاسب با ارجاس رو در حدود هزار بیتی گفت و زندگی او سپری شد و پایان آمد. حقیقت این است که این هزار بیت دقیقی رو فردوسی در شاهنامه خودش عینا نقل کردید. و میگه چوی دقیقی آمد به خواب من گفت حالا که تو نظم شاهنامه رو پیش گرفتی من هزار بیتی از داستان گشتاس و ارجاسپ گفتم که روزگارم به سر آمد و اگر تو اونها رو یافتی در شاهنامه خودت بیار و فردوسی میگه من آوردم آورده است در حدود 1060 بیت اما ظاهرا و اونچه از مقدمه و مؤخره فردوسی بر این بیت های دقیقی برمیاد این است که فردوسی مخصوصاً با اینکه دقیقی شاعر استاد بوده شاعر بزرگی بوده مخصوصاً شعر دقیقی رو در شاهنامه خودش آورده تا به خوانندگان نشون بده که اگر شاعر دیگری این کتاب رو به ناز می آورد، این کتاب ممکن بود چه صورتی داشته باشه. و حقیقت این است که هزار بیت دقیقی مطلقاً طرف نسبت با شاهنامه فردوسی نیست و بسیار خسته کننده و ملال خیزه. و داوری همه استادان ادب عین داوری خود فردوسی است که میگوید من اینها بگفتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار جای دیگه باز میگوید نگه کردم این نظم و سست آمدم بسی بیت ناتند درست اومدم چو تپ نداری چو آب روان ما بر دست نامه خسروان دهانگر بماند ز خوردن توهی از آن بهک ناساز خانی بنابراین ما از چهار پند شاهنامه خبر داریم خلاصه کلام یکی شاهنامه ابو علی بلخی شاهنامه ابو المعید بلخی شاهنامه مسعودی مروزی شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه که دقیقی نظم او را آغاز کرد ولی نتوانست پایان بیاره و هزار بیت بیشتر نگفت ولی خوشبختانه از برکت وجود فردوسی و شاهنامه او هزار بیت دقیقی هم از صدمه زوال مسلون ماند و در متن شاهنامه به دست ما رسید حالا بعد از این مقدمه کلی و عمومی که عرض کردم داستانی که من در نظر دارم عرض بکنم داستان رستم و اسفندیاره که اوج هنر فردوسی و اوج داستانهای شاهنامه است و بعد از او دیگه اصلا داستانهای پهلوانی و هماسی تمام میشه و تقریبا بخش تاریخی شاهنامه آغاز میشه باز همین داستان هم به یه مقدار مطالبی که جنبه مقدماتی در مورد داستان رستم و اسفندیار داره نیاز داره برای اینکه فهم این داستان آسان بشه اولش این است که اشخاصی که در این داستان هستن قهرمانای داستان رستم و اسفندیار اسمشون و معنی اسمشون باید داده بشه سه تا پادشاهن که در این داستان داستان در یکی لهراست به جد اسفندیار و جانشینی که خسرو دومی گشتاس پدر اسفندیاره که خیلی درگیری ها با اسفندیار داره و داستانها و بحث زیاد ازش خواهیم کرد ثبومی پادشاه تورانیست و چهارمی خود اسفندیاره دوسته تا از این یعنی هم گشتاست هم لحراست و هم عرجاست قسمت پایانیش همون کلمه عصب بنابراین لحراست که در اوستایی هست ععور و یعنی دارنده اسب تیزرو گشتاس که در اوستایی و پهلوی بیشتاس آمده به معنی دارنده اسب آماده است و ارجاس پادشاه تورانی که به احتمال قوی اینا هم از اقوام آریایی بودند نه اونجوری که در شاهنامه قید شده از ترکان ارجاس هم به معنی دارنده اسب ارزشمنده اما خود اسفندیار در حقیقت اسمش دستخوش تغییرات زیادی شده به دلیل اینکه این کلمه قاعدتا باید باشه اسفند داد یا لاعقل اسفند یاد ولی ملاحظه می که شده اسفندیار خب خیلی مهم نیست دیگه تمایل عمومی فارسی زبانان بوده به علاوه فردوسی لابد در منابعش اسم این پهلوان به این صورت آمده و او هم به این صورت آورده بنابراین این اسم شهرت بیشتری پیدا کرده و اسمای قدیمی رو به کلی کنار زده اسفند داد که در اوستایی به همین ترتیب سپنتو دات به معنی مقدس خلق شده است بعد خواهم گفت که اسفندیار و برادرش و پدرش اینا به اصطلاح نظر کرده زردوشت و حامی دین زردوشت بودن و از این لحاظ زردشت درباره اینا دعا کرده و تفصیلاتی که بعد عرض می کنن. به هر صورت به همین دلیل اسم این شاهزاده را گذاشتن اسفنداد یعنی مقدس داده شده مقدس به دنیا آمده و اگر اسفنداد چون دو تا دال پشت سره هم داره سخت بوده باید بشه اسفندیاد ولی خب حالا شده اسفندیار. این یک مطلبه مطلب دوم عبارت از این است که این پاتچهان یعنی لحراس و گشتاس و اخلافش کسانی که بعد زومیان اینها رو جزء پادشاهان کیان به حساب آوردن ولی یک اختلاف آشکار هست او این است که سلسله کیانی یک جا از اون نسل کیان با کیخسرو تمام میشه یعنی رستم میره کیقوباد رو میاره از البورزکوه کیقوباد می‌نشینه به تخت بعد پسرش کیقاووس میاد بعد از کیقاووس هم نوه او چون پسر کیقاووس سیاوش کشته میشه داستان جداگانه داره و بعد نوهش کیخسرو میاد کیخسرو داستان مفصلی داره و بعد هم میره در آخر دوران سلطنتش ناپدید میشه و دلاورانه که دنبال او رفته بودن و نمیخواستن از او جدا بشن گفته بوده که شما دنبال من نباید بیاین و نمیتونید بیاید ولی رفتن و اونا در طوفان برف همشون از بین رفتن و تلف شدن و کیخسرو ناپدید شد و عقیده زردشتیان این است که او جاویدان شده و باز در آخر زمان خواهد آمد و دوباره به سلطنت خواهد رسید اینجا قاعدتاً باید کیانیان تمام بشه ولی بعد میبینیم که کیخسرو در آخر کار میگه خب من وقتی که میرم یک کسی رو به شما معرفی میکنم شخصی به بنام لحراس که او هم آدم خوبی است و از نژاد کیان است و چنین است و چنان است ولی بیشتر گردان و پهلوانان ایران لحراس رو قبول نداشتن او رو شایسته پادشاهی نمیدونستن به خصوص خاندان پهلوانی ایران یعنی رستم و پدرش زال هیچ کدوم نظر خوشی نسبت به این جانشین کیخسرو نداشتند. زال که آشکارا اعتراض میکنه و حتی به کیخسرو که این کیست برای شاهی ایران برگزیدی این شایستگی پادشاهی نداره و چه و چه که ناچار میشه که خسرو یه قدری به لحراس اعتبار بده و بگوید که نه من او رو آزمیدم او شایستگی داره و به هر حال انتخابش کردن برای پادشاهی و ظالم سکوت میکنه و لحراس پادشاهی میرسی بعد هم پسرش گشتاست میاد که او هم در حقیقت پادشاهی رو به زور از لهراس میگیره یعنی در جوانی میخواسته پادشاهی رو بگیره و لحراست نمیداده و هر حال میره مدتی سفر میکنه به عنوان اعتراض میره برون و بعد برمیگرده و داستان مفصلی داره که اینجا جای بحثش فعلا نیست به هر گشتاست و من به این ترتیب تخت و تاج رو از پدر میگیره و این داستان رستم و اسفندیار به همین مناسبت پدید میاد که باز اسفندیار هم در جوانی میگه پدر من پیر شده و باید پاتچاهی رو به من بده و پدر که نمیخواسته پادشاهی رو به او بده رتب او رو به سفرها و ماموریت‌های گوناگون می‌فرستاده که آخریشم روبرو شدن با رستم و بعد به تفصیل ازش سخن خواهم گفت نکته بسیار مهم اینه که میدونید فردوسی روایات خودشو گاهی از قول موبد یعنی روحانی دین داشت و گاهی از قول دهقان نقل میکنه یعنی ایرانیان تحصیل کرده و فرهیخته داستان کیانیان تاکی خسرو، ظاهرا همون است که بین مردم یعنی غیر روحانیان وجود داشته و داستان دوران بعد یعنی لوهراست و گشتاس داستانی است که بین روحانیان وجود داشته به این دلیل که در روایت های زرتشتی گشتاس پادشاه بسیار دادگر و بسیار متدین و بسیار خوب و مورد توجه مردم معرفی میشه در حالی که بر طبق روایت شاهنامه گشتاد نه تنها عادل و دادگر نیست بلکه ستم هم هست حسد داره خیلی چسبیده به تاج و تخت و بالاخرم بچه روی همین کار به کشتن میده من برای اینکه یادی از دوست بسیار عزیز دانشمند تازه در گذشته خودم دکتر مرداد بهار هم کرده باشم این مطلب را از روی کتاب ایشون نمان در اساتیر ایران برزتون میرسونم اینجا می که خاندان کیانی به دو دسته تقسیم می شود از کیقوباد تا کیقوسرو و از لهراست تا پایان کار کیانیان که دسته دوم نیز خود از لهراست تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر یا همین بهمن تا دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشیست ظاهرا دسته دوم را به دسته نخستین چسباندند و در اساتیر کهن با کیخسرو و رفتن او به آسمان این دوره اساطیری به سر میرسیده است و درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است بنابرای اساطیر در پایان جهان باز خواهد گشت و جابدانه به سلطنت جهان خواهد رسید اما بعدها که دسته دبمم را به دنبال دسته اول آوردند ویدان چسباندند گشتاس شاه پایان جهان شد که سلطنت را از کیخسرو تحویل خواهد گرفت. ولی افسانه هایی که در میان مردم وجود داشته است و در شاهنامه نیز منعکس است نشان میدهد که مردم برعکس روحانیان زردشتی از گشتاس رازی نبودند و همچنان اسطوره سلطنت جاودانه کیخسرو را که پر از عدد و داد بوده است پذیرفته و حفظ کردند. بعد در مورد گشتاست توضیح میده که یه قدری روشنتر میکنه این حرفش رو میگوید که ظاهراً برمیآید که در ایران دو سنت داستانی درباره گشتاست وجود داشته است یکی سنتی است که موودان زردشتی حافظ و ناقل آن بودن و بنابر آن او شاهی نیرومند و, و دادگستر بوده روایت دوم به ظاهر متعلق به مردم بوده است که در شاهنامه منعکس است و بر اساس آن گشتاست نه چندان عادل که ستمگر بوده است او مردی حسود خودخواه و نیرنگ باز بود و در برابر تورانیان قادر به دفاع از میهن نبود و فرزند خود استندیار را آگاهانه بکشند داد و سعی داشت پهلوان نامی ایران رستم را با تحقیر و توهین دست بسته به دربار خود احزار کند. در مجموع داستان گشتاس در شاهنامه یکی از موارد است که انعکاس تاریخی وقایه اجتماعی و های طبقاتی را حفظ کرده است این پایان گفتار مرداد بهار